حضرت عبدالحسین صلی الله علیه و آله سیدنا رسول الله و آل پاکین حاضرین معصومین و الناس دائمه علی دائمه اشعاعین الله مغفرت را برای همه و رو که در باب نجوم بود مطرح شدیم. صر که مقداری از روایات و مردم کلی در کافی وردن که اونجایی که ما از این خبر داریم تماما در گرد هشت کافی یا روزه به طرا. یه مقدار در خوندن روایت از بهار حال هماً اون مقداری که سال و سال ننوشته اونا رو او ورده اوننا رو خوندید یه مقدار هم محیث شناسی به اصطلا وفه سناسی برای این روایات انجام دادیم. هر را حضور با سعادت شما در این بحثی که حالا کردیم که یه آشور با دستا جمع بکنیم هدف اصلی ما این بود یک استیاب قوایاتی بشه که در کافی آمده خب واضح این مطلب و دقیقا هم نمیدونیم که چرا سال وسائل قدس الله نفسه مرحوم شیخ خورا آمدی استیاب نکرده روشن نیست تماما کباشه این که مرموم شیخ خورد و عاملی در این بحث کلمات سیدم تابوس رو نه اوورده و نه به اصطلاح روایات رو که ای کنه اووردن سی هم این هم برای ما خیلی روشن نیست اجمال قصه اینه حالا من اجمالش اول بگم چون دیگر روز خودین خیلی به اصطلاح اصل تصویر و دورنمای بعد دور نشه سیدم تابوس از مجموعه روایاتی که اوورده بخواد اثبات بکنه. یک این نجوم یادیتنش کفر نیست این کفر نیست اون حرمت که در عباراتی آمده چون در وسائل حرمت تحریم و تعلومه از این نجوم این تحریم نیست و اصولا اعتقاد به تأثیر نجوم کفر نیست مثلا در آن رواد بره که افیر امونی مخاطن برنی منجمی همونگو در این ساعت برین شما اینطور میشید از تعمیرم خیلی باقیم تن شدند و این حرفا بی خوده کسی که بی این ایمان داشته باشه این مثلا نقوقات پیغمبر رو تقزید کرده در خدا ایمان نیاورده ایشون ما ها بگه هز تعمیر خیلی با ایشون شدت قدرت به کار بزن اما نمتون تو کافر یه حفظ کافر برد باز میشه مرتب دیگه هم گردنشو مثلا یک بحث مرحوم سیر تاویس اینه که این کفت نیست یه بحثی دیگه سرین تاوسته که خود نجوم حقه باطل نیست و از اصطلاح نجوم در طی تاریخ معانی متعددی پیدا کرده یکی از معانیش اون علم نجومه که با علم حیعت بازای اشتباه میشه یکی از معانیش تأثیراتی رو که سیارات و ستارگان که خارج از کاره زمینن بر کره زمین داره. چون اینا معتقد بودن که این سیارات سر که از تحبیر با آبا سبعه میکردن و امهات عربه که مرادشون به ترتیب طبقه خاک و چون تا این پایینترین طبقه خاکی خاک و آب و برشن هوا و برشن آتش این چارتار اصطلاحا امهات عربه میگوستن موالید سلاس هم اصطلاح اونها عبارت از جماد و نبات و حیوان یعنی از اون آباه سرعه و این امهات اربعه این تا بچه به دنیا آمونند موالی به این که آیا آقا به قول اون آقا به قوشمان پلکی هم از سری کره کوری زمین هست محلوی هست این اصلا حق یا باطل این یک دهست بوده کفر یا نه حرامه مرحو سیدن تابوس بخاطر که از مجموعه روایات در میاد که یک حق این مطلب واقعا سیار سیار سیارها و یا کواکر سبعه به قولایون اینها واقعا مؤثرا این همه روایات ایشان جمع کردن و دنبال کفی هم که شما فکر میکنید نیست کفر اصطلاحی نیست درست نیست یعنی اعتقاد انسان اگر پیدا بکنه که اینا موثرن این و خدایی در کار نیست این کفر اما خود این به نفس کفر نیست تاثیر رو اون این دقیقاً این خلاصه مطلبی رو که مرحوم سید انصاری خراجش هست مخصوصاً که این مطلب رواش پیدا کرده از اهل سنت دو تا شهر اشراز قبل از ایشان که سید مرتضی در این مطلب نوشتن که مرحوم کراچی در کمزه فوائد که بعد ترکیب قد حرفا اون رو می کنی سه بومیش مرحوم بعد از این یواشتواش من گفتم که شرایی روز شرایشتان اجتماع بکار بودی شواش این بحث نجوم توسط علام رحمه الله تو مقاسه محرمه آمد و خب اصحاب رو رو بحث کردن یکی کم صاحب وسائل ایشون که اصلا تحریم عمل علمه ایشون علم نجوم رو, رو حرام می دونه. صاحب دهار که معاصر ایشانه به اون شدگت و حدت وسائل ایسی این فرم داره این کلمات سنتاوس قبول نمی کنه اینشالا این مباحث فقهی و کلمات فقه ها رو گلشیم مرحله بعدی یک مثل اینه که الان ما کلمات سنتاوس رو مقدار می خونیم و انصافا اختضا میکرد که مرحوم ساعت وسائل عبارات سید رو می اوورد که سه اینه انصافش این طور. فレンチ پراکتیشنو این, این که این کتاب هم در اختیار بوده. از شد که در بحث آداب و سفر از همین ترجل مأمون نعمیتون صاحب رساله خود همین کتاب محمول میکنه و بعیده ببین کتاب در شخصیتش به در اختیارش و خیلی بعیده و غیر دور باشه. در هر حال این یه بحث یه بحثی که ما این دو سه روزه وارد شدیم ممکنه سوال چطوری وارد شدیم؟ یک کتابشناسی مرحوم سیدن طوسیه. استلاحاً ما مبارز کتاب شناسی رو فهرست میگیم در مقابل رجال من دعا از کردم که علمای شیعه بیر از رجال حالا اولین شخصی که نسبت شده رو مدربان کرد رجال عبدالله بن جبل که الان چیز درست درمون ازشون نداریم منطقه های دویست هزار بعدم از مفرزاد پسری که کتابش اجمالاً موجوده نه همش مقدارش موجوده که الله یه جای دیگه اضافه بر اون اصحاب ما بحث فهرس رو اضافه کردم فهرست هر کلام در حقیقت دو نکته اونجاست هر چهار روش تدوین کردن از روایات گرفتن خوب دقت بکنید چه سنی چه شیعه چه زیدیه هر مذهبی که بود مثلا یه جایی روایت حدیثی برا الکلام بعد میوسه این آقا و الکلام رو آورد الکلام از روایت در اومده سعودی‌ها این کارو ما همین کارو کردیم چیز خاصی نداره نکته خاصی نداره البته یک ادعا جاب و معاصرین خودشون نوشتن دیگون استخراج از رمان نیست اما رج که سر از دو راه عرض درو گرفتن چرا راع دادن یکی اجازات یکی فهرستی که قبلا نوشتن و فرق بین اجازه فند سر عرض کردن چرا راع چون نقطه لطیفی گویا تکرار بشه اگر طریق شرح رو به مصادر اصحاب در یک نام که عبارت نوشتاری کتاب به شخص معین باشه استراحهن اجازه میگه مثلا میگه مثل کتاب مثلا مرقوم اجازه استاد علامه به ابن زهره که علی کتاب فلان اینطور الان در آخر خلاصه چون ده درجه جاری میکنه طریقه به پرست نجاشی و کتاب شیخ طوسی آورده نوشته طریقه شیخ طوسی این اینه فهست مگن اگر مخاطب خاص بود اجازه میگن اگر مخاطب خاص نبود اجازه فهست مگن اگر مخاطب خاص نبود مثل عبارت علامه در خلاصه، علامه که طریق من به فهرستی شیخینه به شیخینه طریق من به نزشینه طریق من به برس به مثله اون شریحاشو این باب نسا این میگن اجازه فهست اما اگر این مطلب رو خطاب به ابنی زهره نوشته میگن اجازه اجازه طولانی به دو پرزند زهره نوشته که نصفان هم خیلی فواهض دادی اجازه آز تاریکی شیعه هست چند تا اجازه در تاریک شیعه که خیلی واقعا مؤثر اینکه این اجازه اعلامه این در حکم فهرست ما نمیده اما اجازه از خطاب به شخص محیم نقدر کردیم سهارتی که از خواب ما نوشتن مثل فهرست شیخ فهرس جاشی اذا هرای کاپی شششین اس یا فخریا فهارس باشه یا قبیلا اجازه داشته از جمع بین اجازه به فهارس نجاشی فهرست خودش نشه لذا کتاب نجاشی رو جالبی سال و اخیراً در همین قالب بهش رو نجاشی چاپش کردن چون از طاووس جرجانی مرتضی الله مخالف بود به تعبیری اسم کتاب این نیست فهرست اسما مصنفین اصحاب هست اسم کتاب اینه لكن این اشتباهی اداره به اسم نجاشی ارکانی مهمه و اساس کار رجالی بر شرح حال راوی به ماهو راوی به خاطر تراجی نیست شرح حال نویسی نیست اون تراجی است اگر شرح حال کسی رو به عنوان راوی بررسی بکن این میشه رجالی اما اگر راوی نباشه اصلا رجالی نیست بنابراین الان هم در حال کتابایی مثل جرار مرحوم استاد معجم جر احادیث مثلا ایشون این شود و قبل از شما ادهی فرصیم مثال این زیارت رجبیه که نه از ناهی مقدسه زیارت ناهی مقدسه که ارز مو کردم مورد از ناهی در اینجا مورد سامراز شما ممنوع اوشیعه برن تحبیر به ناهیه می‌کردند و این زیارت علا تحبیر سهت سندشت زمان امام حادی شادره شد نه امام زمان امام عسکری دیگه سو که زمان امام حادیست لکن خود از سامرا روایت بوده بود ولاد که از ناحیه مقدسه فرض حضرت بر عیدی اش شهدا کربلا تسلم بده سلام فلان و فلان خب این الان مثلا مثل مربوط استاد با عنوان در بحث رجال فلان و فلان راجع به تصریف فیزیات ناحیه مقدسه خب این راوی نیست حالا ایشون حواسه به شهدا شهیده شده در کربلا در درجات عالیه ایشون راوی نیست بحث جالی نیست این تراجمه اصلا رفتی به رجال ندارم متاسفانه در عده از کتوب الان به اسم رجال نراشی شده دقیقه نشده که اصلا این افراد راوی نیستن اصلا روایت ندارم اصلا اون در رجال بیاد ولذا اگر بنات شرحال از ما بیاد برطردی که بیاد یا باز دانوان تاریخ و تراجع با اینها باشه یا مثلا یک بسیت دیگری دیگر بیده لغتی راوی نیست و چه در رجال بیاد اصلا علم رجال کان من رجال فلان یعنی از مال همین کان من رجال عبد الله تو در هم داره کان من رجال من رو باد عبدالله کلمی رجال و این جهاز ذکر شد که اصطلاحا مراد راویه اما فهرست و اجازات فهرست اصطلاحا طرقی بوده یعنی نکت بیانه کتاب ها بوده و معلفی و ازا نسبت بین رجال و فهرست اون مقصوم انوشه کنان ارز کنم فهرست مال معلفی نه ولی راوی نباشه. در همین کتاب نجاشی ادهی مثلا از آل نام میبره و از خاندان میسنی ها از خاندان میسن میسن تمام ادهی از نواهایش، ها نواها و نبیرها و نوهی نبیره, نبیره اینا چیز متکلمین اصحابه، کتاعلی گرایان اصحابه. اینو کتاب دکتر، خب مؤلف اصلا راوی نیستن. این اصلا راوی نیست، اصلا یکی دو سال در جغرافیا درس نخونسته. این چطور چه داره؟ یا کتاب در مسائل گلدان نوشته یا کتاب در تاریخ نمیشه. این اصلا چه درود ناز. دقت سفارش ما لحاظ، شیخه اسم تعرض حال مؤلفی میشه ولی اون راوی نباشه، راوی رجال تعرض حال راوی میشه ولی کتاب نداشته باشه. نخست انجام می‌شد که وارد این خوب دقت بفرمایید که راجع به کتابشناسی مرحوم ابن طابوس ما این دو سریه کتاب راجع این بحث کردیم انصافا سیدون تابوسی که شخصیتی بسیار تاثیرگذار در این جهاد و کتابخانه بسیار خوبی باشه انصافا خود ایشون هم اجمالا اطلاعاتش خوبه خیلی به نظر ما در این زمینه تساحول داره ایشان به هر حال اجمالا معلومات خوبی داره یعنی انصافا اگر ما نجاشی و شیخ و به عنوان دو فهرست نگار معروف شیعه در قرن پنجم بدونیم از قرن پنجم تا هفتم بین این دو بزرگوار و سیده تا اون سری سال فاصله هست نجاشی بنام بر معروف چهسته پنجم ها پاسل شیخ هم تا سال شسته ایک شسته دو و معروف سیده تا اون شیسته شسته چار وفاتل شه بعد از این دو بزرگوا. انصافت در این فاصله با کتاب معالم العلمان داریم اما معالم علمان مساجرش درگی منه و نمیدونیم توش قصد تنین زیاده تشکیزش مشکل و حالا وزید معالم صورت اما سیدونتا اوز خوبی شید یک کتاب توصیف میکنه نسخ توصیف میکنه انصافت یک منبع نگاری بسیار کوبیه برای ما من یک مقداری مثال گروسم برای که آشنا بشیم با کارهای سیدن تاووز البته سیدن تاووز بیشترین هنری که داره بیشتر نسخه نه خود کتاب چون مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ امهات مسادر رجال حدیثی ما که قبل از قرن پنجم بوده اوگرزن امهات رو امهات کتاب مهم مال سیدن تاووز از کتاب هایی که بعد از این زمان بوده داریم اما اونقدر زیاد نیست داریم حدیث داریم. چون اما قبل از قرمت اما اونی که سه اتاوز خیلی برش مهمه نسر که اونهاست این خیلی عرضش بره نسر کتاب نبی اومر نسر کتاب این خیلی از این جرد به لحاظ نسخه فهرست ایشان به لحاظ نسخه خیلی عرضش بره و من که شاید مثلا تیه هفت سال پیش که پرابه موجود هستم از فکر کردیم کار شروع خیلی رای شروع کردیم بلیشم توی قوم کانور شده اما یک نشد یک جا اخیران یک نفر که یهودی هم هست و زحمتی توی مسادر شیعه کشیده این کتاب نام ای صفحانه سلطه چاپ کرده که گاهی توی بحثا اسم خب زحمت کشیده این صفحان برزجاشه خیلی زحمت کشیده لیکن به هر حال این از ماست ما کاملا آشناییم به این انصافش خوب بود این کتاب رو ماها می نوشیدی، این انصاف را می این می که ماها موثره می شدیم نه که دیگه از این پن خارجه و اون زرافهایی فنی رو ماها ملت بد می شیم، نه ایشان. به هر حال این نکته رو از دو یه مقداری ما در این حال می که مناقشهای با مها من این حال این نکته رو ما دنبال بکنیم تقریبا شبیه خارجی فرست میشه <تص> نه خیلی از نکته فر خارج خارجی و بعدش فهرست می‌شید من دیگه دو نمونه برای مثال عرض کردم که آشنا بشید البته ایشون در این کتاب خودش مقداری از کتاب سزگی نهوزی این بسیار سزگی نموزی. اگر به فارسی ترجمه شده من نمی‌گم این قسمتایی یه نظرم بر بعضی از نوشت‌های مستشرحین که به لهجه فارسی ترجمه شده که اونها رو من ندارم نمی‌تونم درباره اون ارجاعات اون حکم بکنم اما موضوعی که معمول به کار خود ماست. خوب اشفا در ایشان زیاده مثلا فرض که همون کتاب سباه ابن نصر هندی رو برای مثال عرض میکنم اینو من با تکرار میکنم مرحوم نجاشی اسم کتاب رو آورده شیخ اسم این شخص رو نه در رجال نه در فهره از کرده مرحوم توستری هم اشکال کرده که ایشان چرا نه در رجال نه در فهره اسم ایشون نیورده و اینکه از این که حمزان اون مسئول همه رزا نجاشی گفته این بحث ها رو این معاصل، معاصل ما به فاظر و معاصر و این کتاب اکتاب خانه سلیمتاقوست این نیورده. این اشکال برامون توستری که اچهار شیخ متعرض شده نشده نیابرده اینیه اگر از ما میستی که اشونی توجهات نکرده همین سباهی نسر رو در ترجمه ریان ابن شبیب هم اوورده سلطا... مرمون نجاشی همون مسائل عدن رضا لیکن قنوان رعیان ابن شبیب میگه روا از این نصر ابن سلام مسائل رضا رو وقت طریق خودش رو به رعیان ابن شبیب نوشته مثلا این مطلب تو کتا خان سلطاوس نیامده کل من هم این توجیهان بلقی بشه ایمان بشه ایمان بشه ایمان اصلا نیامده مقایسته بکنه که اینه. این هست وقت دو سه ما توضیح کافی عرض کردیم مرحوم نگشید اون هر که داشته که فهارس و اجازات اصحاب رو کامل نرمه بکنه سرش این بوده در اجازه یک استادش که احمد نبدالواحد باشه که استاد بغدادی ایشانه، در اجازه این استاد بزرگ کتاب رو به سواهب نرسل نسبت داده ایچه بودم تو ترجمه به اسم سواهب ترجمه نداره، و یه سواهب له اون مسائل عنه رضا علیه السلام اخبرمون میری اجازات اونکه ابن عبرود کرده اما تو ریان ابن شدیب از طریق استاد دیگرش مرحوم ابن نوم نقل کرده این ذرافت ها تو این کتاب صافه نیامده؟ این ذرافت سه ایشون این ذرافت ها نیست این کار ما از را ته اشکال این آه یهودی واردیست چون علماء علما هم متفق نشانه ده کار اینا زرافت های فنی این زرافت های فنی رو متاسفانه روش کار نشده و ما اختلاف اینجا در کل کتاب نجاشی زرافت های خراوانی داره کتاب نجاشی فوق پس نجاشی روی امانتش در چی شد روی امانتش در دو اجازه یکی اجازه ابن یکی اجازه ابن ابدون یا ابن الحاشر هم بشین در اجازه ابن الحاشر این رو به سواهر نسبت داده در اجازه ابن, ابن این رو به رعیان ابن شبید نسبت داده مرحوم نجاشم هم دو برده البته ما یه جله از مرحوم نجاشم که یه توضیحی میدار میگم این به همون چیه. دقیق میکرد متاسفانه یکی این توضیح رد داده. در دو تا اجازه دیده ما شماره رو برگردنیم به قرن پنجم که مقام نجاشی چی بوده مثلا این کارها رو دیگه این معاصل این در کتاب کتاب خواهی نگرده نتونسته تشکیف سده که این دو نسخه دو تا اجازه در اختیار مرحوم نجاشی بوده در یک اجازه برایان شبیه این کتاب نسبت داده شده نسخه نو، اجازه دلو. در این این کتاب شناسی خیلی مفیده انصافا یک ابواب جدید رو در سرباز باشه متخصصان در حوزه گفته نشده مگه ما در تو خارج فارس بگیم بله اینها چه توزه من چون نمی‌تون بحث سجادی میگم بوشم گاگای توکل به این ذرافت ها رو متعرض بشین حالا این پنجره و چند شو نفس سیرمو مرده شیخ اجازه ابن اصلا خب این معروف چه جای می من ارز کردم نجاشی بچه بغداده خب دفر کنیم پدرشم از مشایخ شیعه در بغداد بوده طبیعتا از از بزرگان بغداد رو مثلا سالهای سی سد و نورد کردن در کرده بلکه من ارز در اوز آن رسم بود دیگه اون زمان چون یه حدیث اونه استاندارد های پیدا کرده بود اگر کسی از شخصیت بود مثلا میرفت کنیم مثلا بچهی داشت یک سال تازه دو دنیا آمده بود با مصادف می پیش یک شیخ اجازه که 90 سال عمرشه گفت یک اجازه به این بچه من بده اون آقا به اطرا این یک اجازه به اون بچه می داد. این بچه بعدها اینو قرب و اسناد حساب می‌کرد این قرب و اسناد قرب و اسناد این بود این متأثر شد در شیعه در سنی اون بود احساس شما به بچه یک ساله اجازه می‌داد مثلا نجاشی از عبال مفضل شیبانی به نظرم عمر نجاشی در وقت رفعات عبال سال ساله بوده حالا یا واقعا نجاشی خیلی فوقالاده بوده باشید جاغذاره نجاشی فوق عبال مفضل از 385ه او دفت بکنید 385, بکنی. 385 فوق عبال مفضل شیبانیه نجاشی از چین اجازه داره به نظر 16 سال حالا نشوشید یه <متصفر> <تصفر> حالا به احتمال تدریبی یه واقعا بکیه بقالاده بوده در اون سن جوانی بکشگین و جوانی و اسلاما او اجازه داده و شیخ توسی 408 بغداد آمده دقیق بکنیم یعنی حالا فرص نعیاد قرار بزن اول رو 23 سال بعد از اولین اجازه نجاشی 23 سال <تصفر> به طبیع اطلاحات شیخ توسی خیلی از مشایخ نجاچی که در چهار ساده کرده اون ندیده اینا رو اصطلاحا میگید انفرادات مشایخ نجاچی یکی اینکه اول مفضله نه شیخ توسی اینا رو درد نکرده اون بچه بغداد بوده مرحوم شیخ قدس الله سر ابن ایاش شیخ درد نکرده نجاچی درده مثل کان صدی رنگی برده والدی اصلاح اصلا شیخ ایشون درک نکرد چون چار ساده یک وقت شد اما نجاشی ایشون درکرده یکی از کسانی که جزب مشایخ حدیثه به انصافه هم مرد توغال حدیثال و ما و از جامشون خطاهای خیلی وحشتناف داریم اشتباهات خیلی بارزی داره که ما تأثیر نه که واقعا با جلالت شهریشانه نیستاد به مرحوم ردنوه خیلی توغال حدیثال یکی از مشایخ مهم نجاشی صدنه لیکن ایشون در آخر از بغداد رخیر بصره این یه شیخ شیر بغداد روی ایشون در بغداد نبوده و یک سال بعد از شیخ چارسد و فوت کرده شیخ ایشان رو به این معنا درک نکرده از اون راجع به همین ابن نوح صحبت بوده که بعد از مبانی کلامی فاسد داره مثلا به بباریت خدا هست احالیت بباریت قبول کرده یک کلیمی مبانی فاسد کلامی هم از ایشان با قول اون زیمان در بلایت داره یه طور دار خرابی هستی یعنی شد نه حسنه بگه شیل خیلی اطرار نداشته عزیزین اجازه بگیره در جدنه دیداری داشته باید نمون نه خیلی نمون بسته بوده و لذا میگه منم یک تطرق لقایی یا اطلاع من نگیرم این یه نقطه ای که خیلی دقت بکنه هر جا نجاشی گفت اکبر نا امن نور بدین نجاشی. دیگه اون کتاب در اختیار شیخ نبود یه شای تو باحت باشه <تصفيق> و ابن نوه هم در که دادن اجیز بیاده سال بعد از برونده ایشان به برداد فوت کرده پس بنابراین این تون روشن شد از ابن حاشر رو شیخ در کرده شیخ از ابن حاشر نرده این استاد مشترکه. اما ابن نوه رو درک نکرده تا اینجا ابن مخالفتش میکرد برای تون واضح شد شد این یارو محاصر ما درست نتونستید چون کارشان خب وانا یهودون هم احضان شد سعی نیستم وانشون ساکن اسرائیله نبیتونه دار فهم اون ذراست که ما منطفید میشیم این دو قصه سه... چهار اصلا این قصه یک مشکل دیگه داره این سباهب نصر یا سباهب نصر هندی اصلا مرمیست چیه پرست بودایی، میگن حضرت رضا در مجلس معموم در مرگ بودن این از هنگ آمده مبارسه در این نجور کرده و رفته چه رفت به شیعه داره؟ نه منه از خواب نه از امامیه اصلا از مسلمانه مترکه به چه اون اصلا از مرموم شیخ سوسته اسمشون تو رجال امامیه بیاده تو رجال امامیه اصلا خب چرا لجاشی کار کرده به مجرد این که مسائل رضا یک نفر بودایی آمده با از رزا مبازده کرده سوال جواب کرده این رو جزو مسنفاد, مسنفی نشی <تصفيق> <تصفيق> این یعنی شرف لن اصلا این مطلب خود در قطعه در حقیقت اشکال به نجاشی بیشتر وارد تا به شیخ شیخ به شد؟ شیخشون واقعا محمود تو سریعی میگه ادم و ذکر شیله و فر جالا فر جال همون رجال رجال شیعه است و بات شیعه این آمده با با امام مباحثه کرده سوال کرده که آیا این نجوم حرفه این حتونه که از منجمین هندی بوده شاید بودایی بوده شاید اصلا بصره است من نمی‌فهم چی می‌داشته چیه, چیه می‌داشته از که در پیرش شیعه مدل نمی‌شه خانم که شیعه بوده در... نه احتمالاً درستش همون فترت ابن نوح باشه در حقیقت ریان ابن شبیه این نوشتار رو به صورت نوشتاری تو تو ریان ابن شبیه بعد از مرگ اومده قم. مم، در و کیلا که با امام جان نوشتار به ها داده ریان میشد که دایه معتصمه یا دایه معمون. آخه معمول و معتصم برادر هستن اما مادرشون دو تا است. حالا نمی‌دونم برادر این مادره به هرزان مادرشون کنیزه، حره نیست. حالا بعدون بحث میخوام بشن. بخاطری این ریان نشمی که دو, دو مخلص این اصحابه یا برادر مادر معمونه یا برادر مادر معتصم کنیزا هارون بوده به مادر کارش یکی از این دوتا ایشان قوم آمده نوشتاری داشته به قومی ها داده صحبت که با روزان در مرد داشته این احتمال قبیم در حق با ابن نوه باشه این در حقیقت کتاب رعیان بوده این چه لفتی به صباحت رو نهست داره؟ رعیان ندمی نوشته ما که در, در مرگودین یکی از علمای نجوم که هندی بود آمد با حضرت, حضرت این صحبت ها بکرد این جا بودا این توجیه علمی ابن نوح هم این کتاب رو آورده من میخوام نحری کار این مثال زدم که این گذشت که روشن بشه نحری کار ما با این آقا گفت مثلا یه جوری خطورت نمی‌شه چیجوری روش این سؤال مطرحه؟ پس در حقیقت حق با شیخه. شیخ در کتاب ابن حاشم اسم اینو می‌ذاره گفت مسائل نصرن صاف یعنی از این ببین صبا ممکن بود فرس باشه. پس هیچ نظری از همون برگشته ببین چی می‌شد ببین چون اونزه با خود بله کار نوح خیلی بدنی. کار نوح چرا؟ چون ایشون رو توی فهرست تعلیقات رعیان ابن شبیه بود اینم بدی نیست خب کار نیست میگه آمند مرم بودن یک هندی فرسون بودایی، آمد در مر، مجلی خیلصیب با هرگران از مباید سایی خیلی این خیلی مشکل نداره این صاحبا کار ابن هاشم درست نیست کتاب رو به سباهب نسبت بدداده کار ابنون درسته ابن نو هم در شیخ نبوده این چنجه ننده شد چهار من مخوام کیفیت کار روی چهار بگیم رحمت کشیم که میتوردادم کلام رو وقتی مخوام برای تون روشن بشه یه عرق رو الاشواه بنده مسئله پنجم متاسفانه هر دو سند یعنی از اجرایه به کار هم سندی که در ابن نو بوده هم ابن حاشب برمیگرده به شخصی نام محمد ابن به اصطلاح یه محمد ابن احمد ابن لاهق شیبانی چم چی چیزه احمد جو محمد ابن لاهق ابو جعفر ان یحیی یه زکریا لؤلویی هر دو باشناختن هر دو مشغولن چه لعجیبه هر سند ابن لو به این دو تا برمیگرده کاملا با یه شیه. از این دو تا مجبور از ریانه نشدید نهامی میکنه. هم ابن حاشر از این دوتا مجبور از سباهر نهست نهامی کنه خب باشه برای اون دراویه اخیر هر دو مثل هم در هر دو نسخه فقط در یکی در ریانه نشدید نسبت بادن یکی به سباهر نسده هندیه مجبوره همی یکی مسلمون چیه بودایی چی کنه که اما دو خب ما یه هرچی رو کنان حرض کردیم همون مبارسی که ما در سند حدیث به کار میبریم ما در سند تو... کتب هم به کار میبریم وقتی دو تا مجبول در وسط آمدن به احتمال قرآن یه هر دو کتاب جعلیه اصلا کتاب جعلی باشه یعنی به عبارت اخراد کتاب روی مطلق اخباری ها نوشته شده همین که اجازه هرچال تحقیق دید ها واقعیت داریم یا نداره. کتاب روی مسلک اخباری یعنی نمیشه شده این اصطورت بهشون مسلک اخباری مسلک تهدیدی، در مسلک سرگیم میدونه فرم مشغیر آشان همین ها چه حالی کردن اصلا اصلا دارم اصلا اصلا کار به اجازه نداری، اصلا این کتاب اصلا داره که حالا بیگه این بحث بکنیم مال ریانه یا مال سباهه خوب نکرس بکنیم این داره داره کنیم ممکنه بگرد اصلا کتاب اصل نداره این تو اجازات آمده بیوده آمده این دو نفر کاملا مجبور حقیقی هستن اصلا این دو نفر رو و این نوشتار اصلا فقط توی اجازات که شده داره. شاهدش هم چیه در هیچیه که از کتابی که ما قبل از سیفاوز هیچ کتاب از این کتاب که از این کتاب که در اجازه ابن نوح و اجازه ابن حاشر بوده هیچ اهلی نقضه کرده اولین کسی که نقضی سیمتابوس در همینجا هست مثل این خونه هست کتابیش حدیب دارن پس اون رستم و اسفندی ها این, این برای میشه یک جده نوشتاری به اسم حالی ها ریانان یا پس این مال سباهر در اختیار سیمتابوس خب این نیشون بوده که واقعا سیمتابوس خیلی کتاب جمع کرده یک نسخه مجه پیش ایشان وجود بوده پس نتیجه نهایی اصلا اصل این نوشته ها ثابت میهن شاید نهایت در هم احتمالا با سکت باشه یعنی مرجع شکی باشه یعنی ما در نوشته های قدیم خودمون در فرنهای سوم و چارا چون ریانه میشه در خواهر معروف بود متاسفانون ها در قم نداریم که از رعیان بوشه این نرکرده بوشه دو نفره مجروبی هم که از هر دو، عجیبا ها هر دو سنت دقیقا دیگه این دو نفر میرسه لذا انسان این شبه قوی براش پیدا میشه که اصلا این کتاب نمال رعیان نمال سباه یه کسی قسطه بوی مثل خدا رحمت کنان رو هاشی میجاد مناظره یه قسطه جهری برداشه نوشته که ریانمشته این گفت مثلا اصل قسطه و فرق قسطه همه جهلی هم در جهلی باشه مثل رساله حیم یرگان یه چیز جهلی درست باشه یعنی ما الان به هیچ چیز این کتاب و سو نداریم نه به نسخه ابن نو و نه به نسخه به اصطلاح ابن حاش این مطلب ششم مربوم مرحوم سیلتاووس کتاب رو گفته مسائل سباه ابن نصف. کتاب رو به سباه نصفت داده مثل همون کاری که مرحوم نجاشی کرده لیکن سندیره که نوشته نوشته به نسخه به ابن نو اینجا هم زاهن با ابن اشتباه کرده باید با کتاب ریانه بمشدی چون اون نسخه ابن نوش به ریانه بمشدی ظرافت شد مشو نسخه ای رو که نرم کرده دقیقاً نسخه نجاشی است که ابن نوح. لكن نجاشی این رو برایان ابن شبیخ نسبت داده. اون جایی که از ابن هاشم نقل کرده به سباه نسبت داده. پس شیش تا 6 تا نسخه اساسی رو ما برای نمونه برای شما تمام این مطالبیه که هست با این تفاصیل در کتاب این فاضل معاصر ما وجود دارد. این هدف من این بود که یه مقداری من یک نقطه رو به صد تقسیم که که من متعرض شدم و اجوال بود که حالا یه جا جمعوجور بکنید بعداً دیگه یکی یکی کل روایات مرحوم سید تابوس رو براتون شناسی بکنیم این دیگه برمی‌گرده به خارج بهرز حالا باشی در بحث دیگه یک مقدار بقیه روایات رو بخونیم روایاتی که در باب به, به اصطلاح نجوم آمده اونا رو تمام بکنیم تا بریم به بقیه روایاتی که در ما نهنفی هست تا اینجا مقداری از روایات کافی خونده شد که یه مدارش از کتاب مرحومه به نظرم تمام هم مقدار در اینجا از کافی هم هست در یک مطلب دیگریه اون رو دیگه الان نمیخونیم چون بعد در یک جا جمع بکنیم یک روایات ایست که در یک مطلب دیگری آمد اون رو اینشالله در بحث دیگری متعبز میشیم خبر گردیم به روایتی که مطلقاته این راشه بیدیم بعد گردیم به وقتی روایت از کتاب وسائل که در کتاب سال ابواب مایقصصر در باب 24 ایشون مقدار روایت آورده رو که الان روایات مرحوم کلینی با تعقیباتی که سید امتابوش داشت بازم کامل نگفتند نه اینکه حالا کامل کامل باشه در اونجا مطرح شد بعد ایشون هم حدیث شماره 5 در باب 24 از ابواب مایقصصر و وقت تقدم این چاپی که من دارم شاپ مرمان های ردبانی جده دوازد سفیه صد و سیه صد و سیه بیشت نوشتن تقدم حدیث عبدالله ابن قاسم به حسب این چاپی که من الان دارم آمین که خواستم بعد خودشون ملاحظه بکنم بله حدیث قاسم عبدالرحمن مذر تقدمه عبد الرحمن و لغا فی دمفی حدیث قاشن عبدالرحمن الله منها مهر و منها اگر این چاپ من در, خل... در باشه 64 و 65 و و از این چاپ و حسب ابواب مایفتس باب پنج ابواب مایفتس در این باب پنج عدده از محرمما صعده جملت رو به مای متکر این رو باید در کتاب خصال آمده خسال مرحوم صلو الب که بازمثل همیشه مثل اون زمان ممسرف بود خند مختصر کرده بله میشون این جور داره در کتاب حصال کسبریم ابو اسحاق ابراهیمون و محمد ابن حمزت نه امار الحافظ حافظ معلوم از مشارق اهل سنتی ایشانه که خیلی ارزش علمی نداره و گفتیم اگر مرحوم صدوق بعد از اسم رضی الله هم اگر غالبا سنین این که واضح هم سی ماه معلوم میشه که ایشان نرسیده حضوری نیست به نهم کتابت اجازه شده نهم کتابت بود قاله حدستم این سالموبن سالم و ابو عروبه اینجور آمده من یک بحثی رو... گفتم خیلی طولانیه گاهگاهی حالا حال داریم اینجور بیان بکنیم خیلی از روایات ما داریم که لکتور به ما آمده بیشترش در مسادر در این دوی ما مثل کسال و الاشای اینها یه مقدار نسبتاً معتنابهش در کتاب تردیب و استفسار یه کمکیش هم در کتاب کافی سندهای این روایت ما لحظه سنته گاهی اوقات این حدیث در مسادن مشهور اهل سنت هست مثل بخاری مثلا این احادیث حالا تحلیلش به تحلیلش یکی وقت بگیریم شو رو بزنیم و دیگه این احادیث در روایت ما آمده متاسفانه هم سند و هم مدن هر داره خراب کرده با این که در خدوم معروف اهل سنت هست مثل بخاری آمده اکسش هم هست در ایده از خصوص اهل سنت، خصوص کتب زیدی، می‌گیم خب این شو یه دیگه‌ بیانش می‌کنم از ربالات ما، مسروات برق و صفار، نه، اونان خراب کردن. ظاهرش علت اصلیش این بوده که نه اون‌ها رجال ما رو می‌شناختن نه ما رجال اون‌ها رو. این یک نکته است. البته این جایی که اگر در حدیث شناسی مثلا کتوبی که الان چاپ میشه یا رساله چاپ میشه یا بهار چاپ میشه اگر این کارها با دقت و جرافت لازم نه حدیثی فن نه حدیثی پیگیری بشه خیلی پیگیر درویه چون واقعا سنی ها که الان نگاه میکنن میخندن میگن چرا واسه اشیاء قبلا قبل از این حدیث صحیح بخاری همسرش قبلا گفت کرده. این یک مغزل مشکل درست میکنه علاین ثانبه بن صالب و ابو عروبه این ظاهرا غلطه احتمالا مرحوم صدو مرتبط نبود یا نصاک کتاب خسال مرتبط نبوده. صحیحش سریده ابن ابو عروب این ای که لگی طبقه هست کسر ابو عروب دیگه بارد وقتی سنگیانی که آنو خودش کار شماره چند و شماره سیزده و چارده درباب پنج. اما اونی که من دارم میخونم از حامش اینجا مثلا نوشته سالم ابن سالم و ابی عدیمه باز حالا وسائل اون مال خسار رو هم خراب کرده تو خود خسال عبی عروبه از خود اون غلطه باز بردشون غلطه غلطتر یه روزه عبی عدوه میگه دیگه غلط در غلطه دیگه حالا من بارد اون بحثه بشم چون خیلی طول میگه بارد اصالی در اونها بشین قالا حدثنا ابالخطاب قال ابن مسلم حدثنا حارون ابن مسلم حدثنا قاسم ابن عبدالرحمن این در به نعم سنت هست که ظریف ان محمد ابن علی این محمد ابن علی مراد امام باغره ان ابی امام سجاد ان حسید ابن علی چرا در مرمون این حدیث آورده برده بخاطر که از سر دهل سنت برده به امام باغر این از روایات امام باغره که ما هم نداریم آخه این بعضیش رو محمد بن علي، بن علي در این اخطاره. محمد بن علي، آن عبی، آن الهوسین بن علي. انشالله ل مقصده رسول الله خیبره. اهل سنت هم عظم شرایط این احادیث قبول نمی‌کنند چون می‌گن مواضع در حوال مثلا یک سال دو ساله بوده. خیبر ساله شیخه، یه خیلی بچه بوده. می‌گن نه این مرسل قبول نیست. لما اصلا در حالی میخوام واژه بحث سنی اهل سنت بشن. لما پس این حدیث یک مصادر ما نیامده از امام باقر دو در مصادر سنی هم که عمل شیخ هم در کتاب چیزش به اصطلاح در کتاب فقیهش ذکر مکرده لن محصد خیبره دعا به قوصی فتک علا سی... ها سیه بخونی با یا و ته سیه این طرف طرفه. دو طرف این دو شاخه یه چی یعنی به قوص این کمان کمانی گذاشت سر طرف کمان سن محمد الله و افنا علی و ذکر ما فتح الله و به فتح الله و له و اثر به و نها ان خسال تسعه این مرس پیش اهل هم ثابت میدید این که باره تسعه صدوق رو پیش ما هم ثابت میدید نها ان مهر البقی و ان اصل اس داده، اینجا اسیب نرشتیم که ما شرم مفصل دید تو این مقاسب صحیحش اصل است یعنی کسیب الفرم اینجا و ان خاتم زهر و ان سن و اند میآسیر ار جوان ار جوان، قال خیلی باله ابو ادایینه اشتباه ابو اروبه توی خصال ابو اروبه اشون هم اشتباه خود اولیش اشتباه بزرگی اشتباه داریشواه، اون سریعش تایید نه ابو اروبه نه ابو اروبه، اند میآسیر لحومان، لحومان یعنی قرمز، ارجوان جوان یعنی ارغوانی رنگ، ار یعنی ارغوانی با قرمز نزدیکه که. و نزا ارجمانی گفتن ترمز و آتشی من یا سر هرگی چیزهای جنب میترا به اصطلاح عبارت از این دیدیم آرومشون فیلم هم داخل این اصبایی که سابقه داشتن روزینش یه چیزی نسته مثلا شمر میگن نمر میگه چیزی پرد میکنه حالا من هسته شخص رنگ ترمز داره مثلا فیلم های خالی هم هسته در روزان اصبایشون خیلی اینا بسا ترمز پر رن و از سیاه قصی قصی هست که لفید قصیه قص یعنی کشیش لباس های بسیار زربخسی که کشیش ها میپوشیدن نظام اونها مرسی بشدن ولی وحیه سیاه و اونتون سجر به شام این از حالا مکانش به شام چون یعنی کشیش ها میپوشیدن با اونه مورن سیاه یعنی لباس های کشیشی مثلا و از لحوم سبا و انسر و به و انسر رهب و بینه همه و انن نظر فه نجوم این حدیث بیدیم جمعشن ثابت نیست به مفرداتشان یکی یکی داره مختلف مفرداتش نه انن نظر فه نجوم نداریم الا بگیم این حدیث مضمونت جمع کرده روایاتی که من صدق منجمنت لیه الله نهار رسول الله همین رجوع نده هل وقتی دو مسائل دین حدیث هم از صد صلی